درود شنوندگان وفادار رادیو البورس اناوین خبری مربوط به پناهندگان در هفته که گذشته رو به سمع شما میرسونم حمله به پناهجوی کرد ایرانی در لندن 20 نفر شاهد کتک خوردن او بودند مردم محله کرایدون در جنوب لندن میگویند یک گروه 20 نفری شاهد حمله جمعی و کتک زدن نوجوان کرد پناهجوی ایرانی بودند به گزارش بی بی سی این پناهجوی 17 ساله که نام او اعلام نشده همراه دوستان خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت. دو دوست او جراعت سطحی برداشتند اما خودش در بیمارستان بستری است. پلیس لندن 6 نفر را به زن تلاش برای قتل این پناهجو در جنوب شهر بازداشت کرده است. بازداش شدگان چهار مرد و دو زن هستند که همه بین 20 تا 24 ساله هستند. شهردار لندن این اتفاق را محکوم کرده و نماینده منطقه کریدون در پارلمان حمله کنندگان را آشغال توصیف کرده است و اما ماجرات چطور اتفاق افتاده؟ پناسجوی کرد ایرانی در ایستگاه اتوبوس با دوستانش منتظر بود که ساعت 11 و چهل دقیقه جمعه شب سی یک مارس حمله اتفاق افتاد گفته می شود حمله کنندگان پیش از کتک زدن از او پرسیدند که اهل کجاست؟ بعد دنبالش کردند و بارها در خیابان به او مشت و لگد تا زمانی که روی زمین افتاد است. وضعیت پناهجوی ایرانی بسیار بد بدگذر شده. به گفته مقامات پلیس او آسیب جدی دیده اما وضعیتش در بیمارستان پایدار است. جمجمه این پناهجو 17 سال شکسته و خون در مغزش لخته شده است. پلیس به دنبال آن است که درباره این اتفاق به خانواده این پناهجو اطلاع بده رئیس پلیس منطقه کرویدون از مردم محلی خواسته هرچه درباره این واقع میدانند با پلیس در میان بگذارند. یکی از ساکنان خیابانی که حمله در آن اتفاق افتاده اینطور تعریف می کند. جمعیت زیادی از میکده سر کوچه بیرون آمدند. نمی ببینیم چه کسی دارد چه کسی را کتک می زند فقط یک نفر بود که به شدت کتک میخورد و با مش و لگت به صورتش می‌کوبیدند. او همان پسری بود که کارش به بیمارستان کشید. هر کس می به او یک مش و لگت میزد حدود ده نفر بودند که کتک می و بقیه جمعیتی حدود ده تا 20 نفر ایستاده بودند و نگاه میکرد. وقتی صدای آژیر آمد فرار کردند. مردمی که آن طلب بودن نمی دخالت بکنند چون کسی نمی و نمی جلوی یک جمع سی نفری را بگیرد منتظر شدند تا همه متفرق شدند و بعد به کمک جوان رفتند همان زمان که پلیس و آمبولانس رسید و ماجرا تمام شد کاناوارتان شاهد دیگری است که همان نزدیکی زندگی میکند و میگوید با شنیدن صدای فریاد قربانی متوجه ماجرا شدم معمولا جمع شب بعد از خروج از میخانه از این سر صدا ها زیاد است از پنجره که نگاه کردم دیدم یک گروهی دارند یک نفر را ساده خان شهردار لندن حمله به نوجوان ایرانی کرد را محکوم و گفته این شهر جای جرایم نجات پرستانه نیست آقای خان گفته که آملان حمله جمعه شب محاکمه خواهند شد شهردار لندن این حمله را اقدامی بیرحمانه و نجات پرستانه توصیف کرد و گفته است که لندن بریتانیا یا نقاط دیگر جای جای جرایم نجات پراست نیست و هر کسی که شاید چنین رفتارهایی بود باید آن را سریع به پلیس گزارش بدهد چون این اقدامات به هیچ عنوان پذیرفته نیست. اداره مهاجرت آمریکا ایرانی دارای ویزا را در بازداشتگاه فرستاد. یک زن ایرانی که با ویزای معتبر وارد آمریکا شده بود، توسط ماموران اداره مهاجرت آن کشور زندانی شده است. مقامات محلی ارتباط این اقدام با فرمان مهاجرتی دوناترام را تکسیب کردند. عالی قندی، شهروند ایرانی برای دیدار با خویشاوندانش وارد فرودگاه بین المللی پورتلند ایالت اورگان شد، اما ماموران اداره مهاجرت او را مورد پرسش قرار دادند و سرانجام بازداشتش کردند. خرابکاری در خانه مرد ایرانی در پورتلند اورگان رسانه های محلی در شهر پورتلند در ایالت اورگان آمریکا گزارش می‌دهد که پلیس مشغول تحقیق درباره حمله تأثب به خانه یک مرد متولد ایران است بنا گزارش ها حاصل افشار 33 ساله که است، وقتی از سفر سه روز از کانادا برگشته متوجه خرابکاری در خانه دو طبقش و شعارهای نجات بر در و دیوارش شده روی در و دیوار روی در و دیوارها شعار تروریست و مسلمان دیده می شود و از او میخواهد از امریکا برود به گزارش خبرگذاری خبرگزاری پاپلین خرابکار و خرابکاران یادداشتی با هفت گلوله که به شکل سریب چیده شده بود روی میز که در خانه آقای افشار گذاشته, گذاشته بودن بودند در این یادداشت آمده اگر ماه دیگر اینجا ببینیمت با تبر میزنیمت و خانهات را میسوزانیم علاوه بر شوارهای رکیک بر دیوارها که با رنگ قرمز نوشته شده مبل او پاره شده و اسباب اساسی و اساسیه و اشیاء خانهاش به هم ریخته آقای افشار به رسانه ها گفته که پس از تمیز کردن خانهاش قصد دارد آن را بفروشد و آمریکا را ترک کند او میگوید دوستانی در استرالیا و کانادا دارد که هرگز این نوع و تجربه را ندیدند. او هبه نشریههای به نشری مختلف و گفته قصد ندارم قهرمان بازی در برم و بجنگم نخواهم نشست کسی به من تیراندازی کند او گفت اخیرا در پارکینگ یک مرکز خرید مردی به او نزدیک شد و فریاد زد از آمریکا برو بیرون نمیخواهیم اینجا باشی آقای افشار میگوید که به عنوان یک بهایی در ایران هدف آزار پلیس بوده است سرهنگ جاد گایدف از اداره پلیس گفته که تحقیقات کاملی درباره این حادثه شروع شده است یک خبر از سوئد یک پناهجو در کمپ پناهندگی در سوئد سه پلیس زن را کتک زد. روزنامه بیتی دارماک در خبری نوشت فیلمی که از کتک خوردن سه پلیس زن و ناکامی یک زن یک این سه افسر پلیس سوئد جهته دستگیری یک پناهجو مهاجم در کمپ پناهندگی در جنوب استکهلم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده به موجی از خشم و انتقاد شهروندان در رابطه با عملکرد پلیس و بیکفایتی این نیروی امنیتی در محافظت و امنیت و اموال شهروندان دامن زده است این خط خبر تأصف بار از کانال ماش نجات شش مهاجری ایرانی در کانال ماش شش مهاجر ایرانی که قایق آنها هنگام حرکت به سوی بریتانیا در کانال ماش در هوای به شدت مهالود واژگن شده بود نجات یافتند به گزارش بی بی سی بنا به این شش ایرانی پس از مداوا تحویل پلیس مرزی کاله در فرانسه شدند آنها دچار سرمازدگی خفیف بودند این گروه با یک قایق کوچک مایگیری از کاله فرانسه به دوورد در بریتانیا میرفتند که مقامهای فرانسوی درست بعد از نیمه شب پیام درخواست کمک آنها را دریافت کرده است. سازمان دریانوردی و گارد ساحلی بریتانیا هم در عملیات جستجو به های فرانسوی کمک کردند. به گفته سازمان دریانوردی فرانسه کراس آنها در ساعت 2:45 صبح شنبه در حدود یک و نیم کیلومتری شمال شرقی کال پیدا شدند. گارد ساحلی بریتانیا در جریان این عملیات از همه کشتی ها در منطقه خاص در صورت مشاهده چنین قایقی آنها را گزارش سازمان دریانوردی در و گارد ساحلی بریتانیا در بیانی گفت یک قایق گشتزنی فرانسوی این شش نفر را در ساعت نخست صبح امروز پیدا کرد و نجات داد آنها به کاله منتقل شدند و پلیس فرانسه آنها را تحویل گرفت سازمان دریانوردی در فرانسه هشدار داد که چنین سفرهایی به دلیل جریانهای تند باد شدید و ترافیک سنگین در کانال ماش به شدت خطرناک است منش یکی از پرترددترین ترد دوترین آبی جهان است و مهاجران گاه بدون جلیقه نجات یا سایر تجهیزات ایمنی از آن می‌گذرند. آوریل گذشته هم یک قایق نجات بریتانیایی دو مرد ایرانی را که تلاش کرد داشتند با قایق بادی از کانال عبور کنند، نجات داد. و آخرین خبر، سال 2016 رشد 369 درصدی پناهجویان ایرانی و رتبه 4ام در آلمان بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور آلمان شمال ایرانیانی که درخواست پناهندگی شان در این کشور ثبت شده از 5732 و و و نفر در سال 2015 به 26872 و و و نفر در سال 2016 رسیده است این آمار از رشد 368 و و درصدی تعداد پناهجویان ایرانی در آلمان در سال 2016 حکایت دارد و در این حال بیشترین رشد در میان پناهجویان از ملیتهای مختلف محسوب می شود. این آمار همچنین نشان میدهد که ایرانیان پناهجو در آلمان در سال 2016 بعد از سه کشور جنگ سوریه افغانستان و عراق از نظر تعداد در رتبه چهارم قرار داشتند. این در حالی است که در سال 2015 ایران در رتبه نهم این فهرس قرار داشت. در مجموع نیست تعداد درخوااصای پناهجویی ثبت شده در آلمان، به عدد 745.545 نفر در سال 2016 رسیده که رشدی 56 درصدی نسبت به سال 2015 حکایت دارد لپاتون خندون، دلاتون شاد، تندروستیتون پایدار عزیزم